آن ساختمان های بزرگ کارخانه هستند؟ نمیدانم. فکر می کنم کارخانه هستند. ببخشید آقا. این ساختمان چیست؟ یک کارخانه است؟ نه. آنجا یک دامداری است. یک دامداری بزرگ و پیشرفته. بیشتر از دیویست گاو دارد. آن ساختمان دیگر چیست؟ آنجا، روبرو آن ساختمان آبی رنگ یک کارخانه شیر است پس شیر گاوه های این دامداری را به آنجا می برند درست است؟ بله، هم شیر این دامداری و هم شیر گاوها و گوسفندهای های روستاهای نزدیک آن کارخانه فقط شیر تولید می کند؟ نه، در اون کارخانه پنیر، ماست، خامه، کره و بستنی هم تولید می شود این پنیر و ماست ها را به همه شهرهای ایران می برند؟ نه، فقط مردم شهرهای نزدیک از آنها استفاده می کنند. کارخانه های زیادی مثل این در ایران هست.